ساغی به نور باده برفروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده این ای بی خبرز لذت شرب مدام ما هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق سبت است بر جریده عالم دوام ما اندان بود کرشم و بو ناز سهیغدان کایت به جلوه سر بسن و خرام ما ای باد اگر به گلشن احباب بگذری زنهار ارزده بر جانان پیام ما گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است زان رو سفردند به مستی زمام ما مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است زان رو سفردند به مستی زمام ما هر سم که سرفی نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ ز آو حرام ما حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان باشد که مرگ بست کند قصد دام ما دریاوی اخذر فلک و کشتی حلال هستند قرق نعمت حاجی قوام ما